فصل هفتم. درباره دیگران قضاوت نکنید، تا مورد قضاوت قرار نگیرید، همانطور که شما دیگران را محکوم میکنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد، با هر پیمانی که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت، چرا پرکایی را که در چشم برادرت هست میبینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی، یا چگونه می میکنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم حالان که خود چوب بزرگی در چشم داری. ای ریاکار، آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، وانگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوکها نریزید، مباد آنها را زیر پا لگت مال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند، و هر که بکوبد در به رویش باز می شود آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از اون نان بخواهد سنگی به او بدهد و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد پس اگر شما که انسان های گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند، عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصی تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است، به حلاکت منتقی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین بر برحضر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا میتوان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار میآورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمیتواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرند و در آتش میاندازند بنابراین شما آنها را از نیوه خواهید شناخت. نه هرکس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به من خواهند گفت، خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه سریحن با آنان خواهم گفت، من هرگز شما را نمیشناسم، از من دور شوی، ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا میشنود و با آنها عمل میکند، مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمون. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده برانخانه خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، مانند شخص است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد، باران بارید، سیل جاری شد، و باد وزیده به با آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیر شدند زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می